4354 قواعد فقه و اردیبهشت گروه فقه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الله علی سیدنا و نبی اب القاسم محمد و علی اهل طاهرین المعصومین سیما بقیه الله فی الارضین روحی و له الفضه با توکل بر خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی و اهل بیتی اتخار علیکم السلام برساند و آغاز کنیم در بحث از تزاهم نفس با مثلت عقل ما دنبال چی هستیم؟ این قاعد ناظر به این محبول است این که در واقع بگه در تضاحم بین مصلحت نفس با مصلحت عقل ما یکی رو باید مقدم کنیم فرض تضاحم کجاست اینکه در واقع در تضاحم بین دو مصلحت نفس و عقل به ناگزیر باید باید یکی را بر دیگری ترجیح داد. خب اینجا ما می‌خوایم ببینیم این وجه تضاهم چیه؟ وجه تضاهم و تصویر مسألهش چگونه باید بشه؟ خب پس اینجا این فرض رو ما داریم. این فرض این ناگزیری ناشی از چیه؟ به خاطر اینه چرا که در واقع فرض تزاهم مختزی این امره یعنی نمیتوان هر دو طرف رو پاسداری کرد پاسداری یا بگیم رعایت تأمین حالا جایی که کلی میگیم تأمین رعایت یا پاسداری کرد خب، اگر امکان نداره به خاطر چیه؟ به خاطر عدم قدرت کافی نمی توان هر دو رو پاسدار کرد پس در واقع این فر بحث از ضرورت رفع تضاحم از طریق ترجیح یک طرف بعد طرف دیگه اختزای چیه؟ اختزای اصلا اصل تضاهم تضاهمه ما اصلا فرض کردیم تضاهم هست اگر امکان جمع جمع و رعایت دو طرف باشه از فرض تضاهم خارج شده ایم حرف خوبی اشکال نداره ولی برای از بحث خارجه در نتیجه از بحث خارج خواهیم شد پس ما باید این فرض رو خلاصه در نظر بگیریم اما وجه این اینجا چیه قاعده حاضر چی میگه قاعده قاعده تقدیم نفس بر مسلحت نفس بر مسلحت عقل باره یک طرف رو مقدم میکنه یعنی بایدون یک وچه روجهانی داشته باشه خب پیش فرض قاعده تقدیم بر نفس بر مسلحت عقل اینه که مسلحت نفس بیش از مصلحت عقل است خب اینو تحلیل کنیم هم دقیقا ببینیم این اقتضایی نیست این هم برامده از ذات و ماهیت نفس و عقل است چنان که رابطه عقل در واقع نفس و عقل اون رو پررنگ میکنه. این رو باید تحلیل کنیم اونجا ما نفس و دین رو در مرحله قبل بررسی کردیم اینجا بگیم که خود این اقتضا چیه در واقع زوال این در واقع نفس انسانی رو اگه در نظر بگیریم خب طبیعتاً اینجای که صحبت از عقل یه پیشفرز دیگه هم به ما میده قاعده تقدیم از لحد هایی داره خب این پیشفرز ها اینا چی بود؟ یکیش این که این که عقل ما با نفس محترمه از طرف کار داشتیم در مسئله نفس خب اما وقتی که میان سراغ مقایسه عقل و نفس دیگه هر نفسی اینجا وارد نیست خب در واقع اینجا یک پیشفرزه اساسی داره اینه که پیشفرز اساسی این قاعده اینه که انسان هر نفسی مد نظر نیست هر نفس محترمه در این قاعده مد نظر نیست و صرفا نفس انسانی مورد توجه و در واقع موضوع این قاعده است خب اگه اینه در این امر اقتضای خاص خود رو در تحلیل و تطبیق قاعده داره یعنی چی یعنی دایره رو محدود کرده به تعبیر دیگه اه اه ترجیح مجبور فراتر از خلاصه حفظ نفس انسانی نیست مگر اون که دایره ی خلاصه دایره قاعده قواعد در نظر گرفته بشه، اما این پیشفرض نیست. برخلاف برخلاف پیشفرض مجبور خلاصه دایره وسیت گرفته بشه تا تا الزامات اون لحاظ شه. چیش فرض دوم چی بود؟ این که حالا که ما گفتیم مد نظر ما فقط عقل انسان اینجا نفس محترمه است در نتیجه خلاصه ما با نفس انسان و عقل انسان خوایم مقایسه کنیم خب در واقع اینجا ما با چی مواجهیم قاعده تقدیم مسلحت نفس انسانیم با مسلحت عقل خب. مساله عقل و مساله نفس میتوانند خلاصه تنوع زیادی داشته باشند اما دست کم اون مورد اصلی در واقع حفظ نفس و حفظ عقل اصلی ترین مصلحتی خلاصه موردی است بگیم موارد یی که تضاهم بین اونها در این قاعده خلاصه باید رفت شود توسط این قاعده ما این رو دست کم باید خلاصه راهش پیدا کنیم این هم یه پیشفرزیه حد اینه اما اگر خلاصه تضامه های دیگر خلاصه لزومن مد نظر رفع تضامه های دیگر مبد نظر این قاعده نیست درست ما گفتیم که می توانیم موضوع وسیط تر بگیریم گفتیم که مساله خود مربوط به عقل به رغم این تنوع در واقع خلاصه به رغم تنوع مصالح مربوط به اونها و در نتیجه امکان تصویر تضاهم تضامح های مختلف بین نفس و و عقل رفع اتزام های دیگر لزوما مد نظر این قاعده نیست می توانه باشه اما این حد اقل اگر بخوایم به اونها بپردازیم 10 از در واقع توسعه قاعده به گونه که دیگر تظهم ها رو خلاصه در نظر بگیره نیازمند خلاصه توجه و تلاش تلاش و تلاش بیشتر، و البته همراه با خداگاهی و تصریح به این قلم رو بست چرا که خلاصه ارتکاز عمومی نسبت به این قاعده خلاصه محدود به تزاهم حفظ نفس و حفظ عقل چند خلاصه کشش این تعبیر خلاصه وجود داشته باشه در واقع بگیم ظهور ابتدایی این قاعده خلاصه فراگیری زیادی داره و مسال نفس و عقل هم زیاده اما حفظ نفس و حفظ عقل اصلی‌ترین مواردی‌اند که اینجا باید خلاصه رهاییت بشن در واقع به رغم تنوع مسائل مربوط به اینها و در نتیجه امکان تصویر به های مختلف بین اینها لزوماً خلاصه رفع تضاهم‌های دیگه مد نظر این قاعده نیست ارتکاز این قاعده با اینها جور در نمیام پس اینم پیشفرز دوم که محدودیت خلاصه چیه؟ این که محدودیت مقوله نفس در این قاعده بود این پیشفرز اول بود پیشفرز دوم چیه؟ محدودیت تضاهم های مربوط به نفس و عقل در این قاعده اینم پیشفرض دوم بود نکته سوم اینه که خب مصلحت نفس این داره چی میگه محتوای قاعده چی میگه محتوای قاعده ظهیامگر چیه اینکه یک طرف در واقع کلاسه پررنگ و یک طرف ترجیح داره چرا چون داره میگه این برون مقدمه بیش از اونه به تعبیر دیگه در واقع مصلحه سیانته از مصلحت نفس و به ویژه حفظ اون نسبت به حفظ مصلحت عقل و حفظ اون اهمیت بیشتری داره وقتی میگیم این مصلحت بیشتری این چی؟ در نتیجه این اهمیتش بیشتره حالا یا میشه بگیم به تعبیر دیگه خلاصه این مصلحت بیشه یکی اینکه که بگیم چی اهمیت بیشتری داره خب این محتوای قاعده است و باید در نتیجه خلاصه باید مصلحت اهم بر مصلحت مهم مقدم بشه کدامش مصلحت اهمه؟ باید مصلحت نفس به عنوان مسلحت اهم بر مسلحت عقل به عنوان مسلحت مهم مقدم شد خب اینجا در واقع این امر یه جوری خلاصه برآمده از اونه خب اینجا باید یکی رو مقدم کنیم در واقع این اگر به در نظر نگیریم این وچه خلاصه چیه؟ وچه ترجیح حاصل نمیشه ترجیح در واقع خلاصه تقدیم این مسلحت بر اون مسلحت یک اختزایی داره یک خاصگاهی داره تقدیمه تقدیم مصلحت نفس به عنوان مصلحت اهم بر مصلحت عقل به عنوان مسلحت مهم نیازمند تبیین و اثباته در غیر این صورت صرفا به عنوان یک تصویر بگیم تصدیقی تصویر ذهنی خواهد بود که تصدیق نشده و به حد تصدیق نظری نرسیده خب برای پاسخ برای یافتن وجه ترجیح وجه ترجیح چیه؟ این اینه که این رو ما کمک بکنه برای یافتن وچه ترجیح مناسب میتوان به تحلیل در واقع ماهوی و وجود شناسانه مقایسه ای مقایسه بین چی؟ مقایسه بین این دو بین نفس و عقل پرداخت خب این به چه صورت می توان گفت می توان در واقع می توان گفت ترجیح مذبور برآمده از ذات و ماهیت نفس و عقل در مقایسه با یکدیگر خب یعنی چی یعنی اینکه که به تحبیر دیگه تحبیر دیگه ماهیت و اقتضاعات ذاتی نفس بگونه است که وجه تقدیم و ترجیح نسبت به خلاص سیانت از عقل رو حابیل نشان نشون میده خب این ماهیت چگونه است خب به تعبیر دیگه این ماهیت عقل اختزایی داره نفس نفس انسان ویژگیش چیه نفس انسان تفاوت اساسی با نفس دیگر موجودات زنده داره این تفاوت برآمده از برخورداری انسان از عقل بست. خب باشه عقل انسان عاقله انسان حیوان برخوردار از عقل تصویر شد اما تصویر انسان تصویر انسان بدون عقل تصویر انسان بدون عقل تصویر نا در واقع نامناسب است حتی افرادی که از عقل در واقع بگیم افرادی که کودن و بگیم دیوانه و مجنون محسوب می از صدهی از شعور برخوردارند می برخوردار باشن بگیم می‌توانند خلاصه یه می‌توانند از سطحی از شعور و عقل انسانی حالا شعور بگیم به معنای از شعور برخوردار باشند که اونها رو که رو نسبت به دیگر حیوانات به نوعی خلاصه تمیز میده خب اما شاید اینطور بگیم بگیم اون ذات انسانی در واقع اقل داره خب در مجموع انسان در این موارد انسان بدون اقل فندازه تصویر میشه خب اما عقل بدون یه تعبیر اینطور بگیم. در واقع میخوایم بگیم که عقل یک خلاصه تکیه گاه بگیم نفس نفس انسانی در از طریق حضور روح در بدن و کالبد جسمانی ثقوق نیابه چون ام ان اما عقل به تنهایی خب اینا میتونه خلاصه جدا بشه چون که تفکی که روح از بدن به مسابه از بین در واقع فوت انسان خواهد بود اما زوال یا کاهش عقل به تنهایی مستلزم خلاصه از بین رفتن از بین خلاصه حیات انسان نخواهد بود خب این یعنی چی در واقع به تعبیر دیگه از بین رفتن انسان و حیات او هم مستلزم در واقع زوال نفس یا بگیم با تسامح زوال نفس و هم مستلزم زوال عقل خواهد بود اما تضعیف یا تعطیل تضعیف یا تعطیل موقتی عقل یا حتی زوال اون موجبه از بین رفتن خلاصه حیات انسانی نمیشه در واقع چی میخوایم بگیم این که به تعبیر دیگه خلاصه در دوران بین حفظ عقل و نفس و حفظ نفس میتوان خلاصه با ترجیح حفظ نفس یکی از دو طرف رو سیانت کرد اما با پذیرش در واقع خلاصه زبال لنفس عقل هم خلاص عقل هم از میان خواهد رفت در واقع سیانت از یکی یک اثری داره خب اما اون مقوله متفاوته با حفظ عقل اینها خلاصه ای نم توانیم نفس رو نگه داریم به تعبیر دیگه یعنی انسان بدون عقل میتوان تو اندازه قابل تصویر است اما وجود سیانت از عقل از وجود عقل بدون سیانت از وجود نفس امکان نداره با این نگاه بشریم خب بنابراین این امر نتیجه چیه؟ خلاصه این که بچه ترجیح ذاتی از وجود شناسی اینها می توانیم خلاصه پیدا کنیم بنابراین این خودش به انسان بدون اق قابل تصویره خب توجه به این تفاوت اساسی میتوانه به عنوان وجه ترجیح خلاصه محسوب بشه بله یه موقع دوران بین حفظه دین و عقل اون مقولش فرق میکنه خب اما این مقول متفاوته خب در این ده ده خلاصه در مجموع اینها نشان میده که یک تفاوتی با هم دارند خلاصه میگیم آقا چرا انسان انسان رو وسط بحث میاریم اون یه مقوله دیگه است یعنی در واقع پیش نیازها، ها پیش فرض ها این بود که سایر موارد از بحث خارج بشه محدودیت مقوله نفس به نفس خلاص انسانی او یه بحث دیگه از تفاوت خاصی داره خب انسان یه جایگاه خاص خود رو داره ماهیت خلاصه ذاتی نفس انسان بگونه که وچه تقدیم برای عقل میاره اما این برای عقل انسانه اما تصویر خلاصه موارد دیگه دوچار مشکل هست و ما میتوانیم اون رو از گردونه بس خلاصه در خارج بکنیم اون یه بحث دیگه است. خب پس ما برمیگردنیم یه مقدار به اون ویژگی ذاتی و این که در واقع وجودشناسی این ها کمک میکنه که ما این مقبوله رو تصویر کنیم بنابراین اصلا اگه با نگاه فقهی نگاه کنیم فرض از منظر فقهی تصویر خلاص زوال نفس و اینکه از دست رفتن حیات انسانی مختزی انتفای موضوع برای سیانت از عقل خواهد بود بنابراین در نتیجه با ترد اصلا معنا نداره تقدیم حفظ عقل در مواردی که در مواردی که حفظ عقل منوط به حفظ نفس باشه ام اصلا امکان ترجیح این مورد منتفیست در واقع ترجیح بلکه بگیم امکان تضاهم خلاصه تصمیل میره شما یه طرف رو برمیدارید اصلا وجود رو به هم زنید. خب مواردی که حفظ عقل منوط به حفظ نفس باشه امکان ترجیه یه طرف بی است خب شما میخواید روح رو چطوری حفظ کنید؟ زیرا امکان در واقع حفظ عقل بدون حفظ نفس بلیست وجود نداره حفظ ارمنود به حفظ نفس خب ترجیح مزبور یعنی چی؟ ترجیح مزبور به معنای چیه؟ به معنای خلاصه از بین بردن موضوع تکلیف چرا؟ چون انسان از بین میره امکان حفظ عقل بدون حفظ نفس وجود نداره خلاصه این اختزای اختزای حفظ عقل در فرض مزبوره که شما میخواید حفظش کنی باید نفس از بین بره از بین بردن موضوع تکلیف از طریق از, از بین در واقع پذیرش زوال نفس و فوت انسانه این اقتضای خلاصه حفظ عقل در فاز مزبورے بنابراین خب حالا یه بحث دیگه ای که ما داشتیم این که مثلا حفظ عقل چگونه میشه خب در واقع اینجا حفظ نفسی که ما داریم میگیم چه نوع حفظ نفسیه تو این بحث ما اون وجود انسانی رو کار داریم نفع حفظ نباتی خب در برخی از موارد میتوان کالبود انسان رو حفظ کرد بدون اون که خلاصه بدون اون که بتوان روح انسان رو در کالبود مزبور نگاه داشت این امر دیگه در راقب به معنای پذیرش موت انسانی است در معنای عرفی اونه به طبیر دیگه به طبیر دیگه حفظ حیات نباتی چندان حالا این چندان رو برای اینکه بیاریم که بحثی موقع فتوا اینا نخواهیم اون صورت قاطع بدیم حفظ حیات نباتی خلاصه چندان به معنای اینطور بگیم لزوماً به معنای حفظ خلاص حیات انسان نیست دیگه انسان مرده حالا مثل اینکه مثلا گردن یه نفر رو بزنند اما ببینم اون داره می دوه اون بدن مانند این که گردن فردی رو بزنند اما بدن او به اقتضای در واقع حفظ بخشی از توانمندی های جسمانی و بگیم عصبی و خلاصه اندامی به مقدار محدودی خلاصه حرکت کنه و, و حتی خلاصه حتی اگر اون فرد به صورت ایستاده خلاصه کشته شود و گردنش قطع بشه اصداده باشه میتوان شاهد دویدن او هم بود اما این روشنه که دیگر از منظر عرفی یا حتی عقلی این انسان مجبور برخوردار از حیات نیست خب ما از این چه استفاده داریم میکنیم در واقع پذیرش خلاصه حفظ نبات حیات نباتی به معنای این نیست بحث ما سر چیه؟ میخوایم میگیم که آه در یه صورتی انسان اگه رو از دست بده امکان بقای انسان وجود داره حیات انسان باقی است خب اینجا می توانیم اگر عقل شما دست داد حتی بگیم انسان وجود داره یا بگیم عقل ناقصی از اون وجود داره در واقع شاید این بحث هم کمک بکنه در, در بسیاری از موارد مثلا مانند نوشیدن مسکرات اینطور بگیم در شیدن مسکرات عقل انسان به صورت کامل و پایدار از بین نمیده به طور نمونه در واقع نیاز داریم برای تصویر تضاهم مزبور توجه به برخی از مصادیق مهم زوال عقل میتوانه خلاصه کمک کنه خب بر جسدی به طور نمیمه در نوشیدن مسکرات عقل انسان از بین نمیده در نتیجه در تزاهم بین خلاصه زوال عقل از طریق شرب مسکرات با حفظ جان فرد این یه نکته اضافی مطرح میشه امکان بازگشت عقل وجود داره حالا ما تجویز عملی نمیخوایم بکنیم نوز بله چون کسی که خلاص شرب خمر بکنه ممکنه بیزن خودشم بکشه اما در تزاهم مزبور در نتیجه در در این تزاهم حفظ جان میتواند با بازگشت عقل در واقع با خلاصه حفظ عقل توان باشه اما در واقع ترجیح حفظ عقل و دیگه نمی امکان نداره ترجیح حفظ عقل و از دست دادن جان معنا نداره نمیتوان خلاصه جان رو از دست داد اما عقل رو حفظ کرد بنابراین اقتضای ذاتی اینها خلاصه این, این در واقع تحلیل وجود شناسانه بود این عقل به مسابقه تحلیل وجود شناسانه نشان میده که ترجیح یکی از دو طرف می توان خلاصه معقول باشه معقول و قابل پذیرش برای عقل و اغلا باشه اما خلاصه کدام طرف ترجیح سیانت نفس اما ترجیح سیانت عقل بر سیانت نفس معنای خلاصه معنای محصلی نداره مگر اون که ما بخوایم به چه سطح اکتفاق کنیم مگر اون که مثلا سیانت از جرح و ضرب بگیم جرح خلاصه بگیم زخمی شدن یا زخمی شدن انسان یا قطع برخی از اعضای غیر خلاص ممید غیر مؤثر در حیات انسان با حفظ عقل تظاهن پیدا کنه خب یه موقع یک ماده میده طرف عقلش کلنه دست میده در این صورت سیانت از عقل بدیجه در مواردی که به خلاصه میتواند به زوال عقل به صورت دائمی بیانجامه انجام در سیانت از خلاصه اندام خلاصه اجزای انسانی اجزا و اندام خلاصه سانوی بگیم یا غیر ممید برخی از اجزا حالا ممکنه بگیم آقا مخشه ببوره این عملا به همون برمیگرده گرده سیانت از برخی از اجزا و اندام انسانی خلاصه ترجیح دارد این دیگه بحث خاصیه ترجیح سیانت نفس افتر می‌توان چه کار کنه ترجیح سیانته نفس میتوانه معقول باشه اما ترجیح سیانته عقل م... معنای موثلی نداره خلاصه چرا که به زوال اصل اون برمیگرده خب این یک مقوله برنورد این ترجیحش یه ترجیحی که میتونه با تحلیل عقلی داشته باشه خب وقتی اینجور باشه طبیعتاً الان این یک نوع حاکم عقله یعنی آیا ما به چی تمثل کردیم دنبال استدلال عقلی میخوایم بگردیم نقلی بگردیم در واقع این تحلیل میتوانه به مسابه در واقع استدلال عقلی برای ترجیح مزبور تلقیشه اما این استدلال به خاطر شروع از در واقع ت... یا بگیم تمرکز بر به خاطر تمرکز ابعاد وجود شناسانه می توانم استدلالی عقلی و وجود شناسانه خلاصه موضوع شناسانه وجود شناسانه تلقی بشه در واقع اگر ما بخوام استطلال های عقلی رو بندی کنیم از این منظر خلاصه اینم یک نوعه بنابراین استدلالی عقلی وجود شناسانه تلقی بشه چنان که خلاصه من این نداریم من ای برای بهرمندی از دیگر روش های از دیگر استدلال های عقلی هم خلاصه وجود نداره و ما میتوانیم از راه های دیگه استفاده رو بکنیم بنابراین ما این بحث رو پیش بردیم وچه ترجیح رو خلاصه بر اساس اون پیش‌فرض‌هایی هایی که در بحث ما هست استخراج بکنیم خب تمثل به عدله نقلی هم طبیعتا راه داره و ما راه رو نمیبندیم در واقع استدلال ما چی بود؟ یک استدلال عقلی وجود شناسانه بود که ما می توانستیم اینجا بیاریم خب برای رافتنش ما میتوانیم از این روش هم استفاده بکنیم استطلال عقل وجود شناسانه یک راهی بود که حالا به مد نظر ما میتوانه باشه استطلال های دیگه هم آیاد روایات به حال از اونجا استفاده بشه یک نکته اساسی در استطلال های خلاصه نقلی میتوانه به مواردی ما میتوانیم بر بخونیم که این ترجیح رو بده در واقع در پا استقرای نصوص دینی می توان آیات و منصوصاتی رو پیدا کرد آیات یا منصوصاتی آیات و روایات متعددی پیدا کرد در راستای ترجیح حفظ نفس بر حفظ عقل بلاسه سراغ گرفت این هم یه مقوله مستقل نیست، اما نکته کلیدی این که اون وچه ترجیح را ما چگونه پیدا بکنیم، اون وچه ترجیح این خلاصه می‌تواند ابعاد مختلفی داشته باشه. این وچه ترجیح اگر یک طرف رو تصریح بکنه، آبیاتان به نفع ماست. اگر خلاصه ما ایدئال بخوایم فکر کنیم بهترین استدلال نقلی میتوانه اگر به دنبال بهترین استطلال عقلی باشیم بهترین استطلال عقلی استطلالی خواهد بود که تصریح به ترجیح من. ترجیح و تقدیم مزبور رو برای ما گزارش کنه و خلاصه به ارمقان بیاره خلاصه تصریح داشته باشه در غیر این صورت در واقع شناسایی در واقع استظهارها میبایست از طریق استظهارات فقهی یا و در مرتبه بعد از طریق استقلال های فقهی این ترجیح رو اثبات کرد خب این یک راه خوبی است در واقع راه رو به ما نشان میده که ما نصوص رو به پیدا کنیم در واقع برای استدلال خلاص استدلال عقلی می به طرق مختلفی انجام شه که به که شمای کلی اونها به ترتیب اهمیت و بگیم به ترتیب توانمندی و خلاصه ترجیح استطلالی و به ترتیب خلاصه زیر میتوانه ما رو خلاصه راهنمایی نمایی بکنه و ما از طریق حالا بحث میتوانیم باشه که آیا از طریقا طول عملیم میتوانیم بحث رو داشته باشیم باید اختزای اون رو دید نه. اما پیش از اون هم سو که در واقع در صورتی که ما در صورتی که استدلال در واقع دلیل سریحی این مطلب پیدا نکنیم میباعث از طریق استظهارای فقهی خلاصه این ترجیح رو اثبات کرد راه دیگه چیه؟ یعنی یک عدله ما پیدا کنیم در این صورت نصوصی که ظهور قابل قبول و معتبری نسبت به ترجیح و تقدیم مزبور داشته باشند خلاصه قابل تمثب خواهند بود در مرتبه چی؟ بعد در مرتبه بعد اقامه استطلال های فقهی نیز می توانند این ترجیح رو اثبات کنند خب این ترجیحات اگر ظهورات بود ظهورات گونه است بخشی از ظهورات می توانند معطوف تکتواث هستند می‌توانند بخشی از زهرات می‌توانند معتوب به کشف تزامونات ادلالت‌های تزامونی باشند. چنانکه اینکه بخشی از اونها ناظر به در واقع ناظر به کشف ادلالت‌های استلزمی. روشن و بدیهی می باشن اما در مرتبه بعدی اقامه استدلال های فقهی می توانم باشن اثبات کرد چون اینکه هم از سو که به استلزام های استلزام های پیچیده و با و از طریق استلزام های با واسطه هم علاوه یا اقامه مقدمات متعدد می توانم علاوه این مقوله کمک کنم الحمدلله رب العالمین